ایران ویژ بازنگری در تاریخ قلم روبه میانی اصلا نهاندرتالا هم که از آفریقا اومدن بیرون اول اومدن آسیه غربی من میدونم که 19 هزار ساله پیش از آسیه میانه جلوتر اومده و چی شد که از زاگروس رفتن به آسیه میانه و بعد از آسیا میانه پخش شدن رو و امروز هیچ کس نتروست توضیح دوازی کنید انسانه خیلی ساده تری بوده از انسان از را آهن که بخوان اصامی خیلی پیچیده بذارن اصامی مسئله هم یه جلوی پیچیده تر میشه در یک محاجرش که دو خود اینو یشت انسانه. در یک ماجهه که سنده متاخردتر اسلامی به ویژه گفتن این خواستین پادشه است. ما رد پای مشخص رو از حدود چهل هزار سال پیش پشت کوه غربی زاگروس رد پای انسان رو انسان نوین رو مشاهده میکنیم تکلیف مشخص نیست یعنی هر کسی یک نظر نبیره عزیزان سلام، آدم احترام و فروتنی خدمت هم‌میهران گرامی، شنوندگان صدای امید، به ویژه همراهان برنامه ایران ویج، برنامه‌ی پژوهشی درباره دیرینگی تاریخ قلمروی میانی، به ویژه تاریخ فلات ایران. در قسمت گذشته ما سعی کردیم تا حدودی نقطه عطفی باشیم از قسمت سی و دوم به این ور به عنوان قسمتی که تا حدودی برنامه‌مون متوقف شد و سری جدیدی این برنامه رو شروع بکنیم. اول از همه خب ظاهرا جناب آقا ایران مهر از قسمت 33 یه نکاتی دارن ایشون بفرمایان من بعد بحث اصلی رو شما ایران رو یه دو یا نهایتا 3 دقیقه دیگه جمعش کنین دیگه بریم سراغ مباحث اصلی. خواهش میکنم درود به شنوندگان گرامی نشست پیش خب ما دیگه بنا شده که امدار شکل برنامه تغییر کنه و بریم سر اصل مطلب. با نبوده دوتا تا عزیز زبان شناس اصلا با نبوده زبان شناس تو این برنامه کلن حالا هرکی میخواد باشه. ما یک بخشی از مطالب رو شنوندگان بدونن که از دست خواهیم داد. این از... یعنی من الان اگه بخوام پاسخ های فیروزی رو بدم که جمشید در اوستا واژه که درباره شخص حقیقی در اوستا در زبان اوستایی به کار میره و واژه که درباره... شخص غیر حقیقی اشخاص غیر حقیقی به کار میرن اینا چه تفاوتی دارند؟ چه فعلایی چه صفتهایی به کار میرن و بنده که زبانشناس نیستم که یه زبانشناس باید باشه و اینها رو توضیح بده که اون بخش اوستا که گفته پسر ویونگ هان اون به چه دلایلی نمیتونه شخص حقیقی باشه خب وقتی ما زبان شناس نداریم منم ناچارم صرف نظر کنم و این نه تنها این یه بخشی از مباحث ما طبیعیه که از دست خواهد رفت اینو که خب این یکی از ضعفایی که ما برنامه ما بعد از این باید باهاش بسازیم ببینید ما چون تاریخمون کهنه مثال زدن چین در تاریخ ایران یکم جفاست به تاریخ ایران یا مصر رو باید تو بخویم چون مردم ما اصولا و همه جهان مصر رو کهانترین تاریخ جهان میدونن در صورت که ما اینجا جدولایی آوردیم و بازم میلیم نشون میدیم که مصر در دوازده تا تمدن قلم روی میانی جوانترین بین اون دوازده است. یعنی یازده تا کهانترن مصر جوانترین اوناست آخرینش که تشکیل شده خب مردم ما طبیعی چیز تخصص رو ندونن اما دانشگاه های ما هم اینا رو نمیدونن فرض رو بر کون بودن مصر می گیرن مثال زدن مثل ابار ایرانم نمیگم به درد نمیخوره ها اما وقتی شما تاریخی به این کههنی پشت سرتون دارین داره از یک جایی از رودی صحبت میکنه که اینا کنار اون بودن و از دریاچههایی داره صحبت میکنه که الان اون دریاش نیستن پس این خیلی داستانش سال اینا پیش این زمان ببینید تو شاهنامه شما میایین میرسین به گشتاس بر اتفاقات میفته و اینا بعد میبینین گشتاس میره روم درسته؟ آی فیروزی فرضیه شون که بنده کاملا پیروی نظری آیفیروزی در این باره هستم گشتاس زمانش میرسه به پنج هزار سال شش هزار سال پیش از نبرد ترو میره هفت هزار سال پیش من از شما میپرسم آقای دکتر ماهی بی سال پیش میشه بگین روم کجا بوده دقیقاً باید مشخص ما همه میگن گشتاظ رفته روم آقا ما باید بشناسیم ما باید اسنادو تحلیل کنیم بفهمیم کتاب اول لبستان که نیست که بخونیم مثلا کوکب رفت خونه زینب دیگه بگیم همین بود که بله وقتی این قسمت به پایان میشه، چون سه قسمت دقیقه بیشتر وقت نداشتید خب حالا توضیحاتتون تا حدودی صائب بود حالا میخوایم با خدمت شما از دست کنم که دیگه میخوایم مشخصا وارد دوره های تاریخی بشیم ایران ما یه برنامه دیگه ای داشتیم تحت عنوان برابری که بسیار هم مورد توجه واقع شد حتی بخشی از قسمت هاشون من حتی پیگیری کردم تا بیش از ده هزار تا دا دانلود داشته و خیلی برنامه بسیار خوبی بود و خود بنده هم تو شبکه های اجتماعی و اینا که بین فالویل هایی که بسیار مورد توجه واقع شد در پایان اون قسمت ما تقریبا رسیدیم به اون جایی که انسان در واقع گسترش پیدا کرد نوع بشر انسان هوساین تقریبا رسید به فلات ایران و مشخصا به زاگرست و شما تقریبا تو فرضیتون اینه که این دوری تاریخی به احتمال زیاد اسضیت احتمال تقریبا 35000 سال پیشه و دوره کیوومرس میخوایم دوره کیومرس رو با اساس پژش های خودتون توضیح بدید حالا فکر کنم چندین قسمت شما توضیح داشته باشید الآن تو این قسمت شما ده دقیقه فرصت داری تا اینکه ده دقیقه هم به آقای فیروزی فرصت خواهیم داد. آقای دکتر می بینیم سعی برنامه سادو سیما بودند سیسانی وقت داریم برشم قطع می کنند این شد. قراره اشکال نداره چون داوری کیومرز مهمرف بزنم فقط من بگم که اسناد چیزی که نوشتن مثلا شاهنامه هم اینجا جمشید شاه بود. وقتی من میگم اینا معنا دارن کیومرز مثلا شاه بود کوه بود اینا اینا معنا دارن ما معنا اینا رو تلاش می کنیم در بیاریم. مثلا من یک نکتهی در همین باره بگم ما باید دقت کنیم چون ما یاد گرفتیم که مثلا جمشید پسر تعمورست تعمورست پسر اوشن کی پسر کی حالا اینا همینجور اصطلاحیه اما حتی تو این پسر در پسرها ما یک باد دقت کنیم تو این انقطاعی که پیش از گشتاس پس که من روم رو گفتم رفته به روم باید حواسمون باشه که لحراس پ... پسر کیخسرو نیست تاریخ ما آثار الباقیه و همه اسناد دیگه اشاره کردن این خیلی نکته مهمیه توی مباحثی که ما بعدن ادامه میدیم لوهراس پسر کیخسرو نیست این،, این خیلی نکته اساسی میشه توی این هنوز تاریخی در شده که همونجوری که میگن اصلا نوشته که این پسر اون بود بعد از اونجا رفت اونجا این پسرشو اینجوری کرد بله اینا است ما بود معناشو متوجه بشیم بله دانشمندا الان دیگه تقریبا متفق القولن که زندگی انسانی که ما الان میشناسیم با سبک زندگی امروزی از 50 هزار سال پیش آغاز شده. اینا حدوداً 110 تا 90 هزار سال پیش، نمیتونیم قطعی بگیم چون مثلا ردپای 124 هزار سال هم پیدا شده. چون اینا باهم قرار نمیذاشتن که بیاین الان از آفریقا بریم بیرون که انسان تکامل پیدا میکرد و گروه به گروه از قسمت شمال شهر آفریقا به درون آسیه غربی نشت پیدا میکرد. انسان شناسی با پاسخ بده که اینا کی اومدن؟ اینا ما در پایان برنامه برابری اینجا رسیدیم که اومده بودن به آسیا غربی. از آفریقا وقتی پاتو میذاری بیرون اول میرسی به آسیه غربی حتی نهاندرتال هم که از آفریقا اومدن بیرون اول اومدن آسیه غربی بعد اون مسیر نشتشون به سمت شمال و شمال, قرب و شمال شرق و بعد رفتن حالا جای دیگه پراکنده شدن پس بدونیم قدمگاه آسیه غربی انسان زمانی که رسیدن حدود 70 تا 60 هزار سال پیش نشت پیدا کردن یعنی کوچ نمی کردن در انگلیسی معنیش این کوچ اشایره ما نیست دقیقا. نشت پیدا کردن مثلا بعضی‌ها تصمیم که نمی گرفتن یه افرادی بودن که تقریبا مثل موجودات دیگه زندگی می‌کردن یه ذره مثلا هوش داشتن و تکامل پیدا میکرد بعد یک کپه اینجا که زیادهش بعد میرفتن اون مکان دیگه بلد. مثلا خرگوش در استرالیا بردن سفید پوستا خب یه نقطه رهاش کردن بعد کل استرالیا رو گرفت خرگوشا تو استرالیا کوش نکردن گسترش پیدا کردن نشت پیدا کردن اون نشت انسان از آفریقا با غربی به این صورت بود 70 تا 60 سال پیش تقریبا پهنه آسیای غربی رو گرفته بودن و ما رد پای مشخص رو از حدود هزار سال پیش پشت کوه های غربی زارگروس رد پای انسان رو انسان نوین رو مشاهده میکنیم حالا قبلش نمیدونم انسان دنیسوا نهاندرتالا آمده بودن. اینا بله اومده بودن مثلا انسان دنیسوها قدش یه متر کلن بله این انسان ها هم اومده بودن رفته بودن حالا ژنهایی اینا آموزش کردن با تالا با انسان ها هم هست چون از یک حساب از همین خانواده انسان سایانن اما به طور مشخص انسان که همین انسانی که ما میشناسیم. اینا ما حدود هزار سال پیش نشانهاشو در پشت کوپای غربی زاگرس مشاهده میکنیم تو قارها حالا برای که تو برنامه برابری گفتیم اینجا من یک اشاره کوتاه میکنم. هر وقت زمان تمام شد شما بگین چون اینا مطلب خیلی چیزی نیست. بعد ما بحث دوره کیومرس ادامه میدیم. اینا در جنوب غربی ایران منظور همون پشت کوپای ایزاگروسه از اواخر دوری پلیستوسن, پلیستوسن، یعنی دوری چهارم زمان شناسی، اینجا داره شرط اقلیمی سازگار بوده. اون چیزی که مشخصه. در لرستان. این در دوره اینو به دوره مسترین حدود صد هزار تا چل هزار سال پیش این سکونت رو نسبت میدن یه قاری داره به نام همیان دو و همیان یک در اینجا علاوه بر ابزار و شواهد سکونت نقاشیهای از ادوار بد بر بدنه قار شناسایی و مطالعه شده گروه های انسانی رو تشخیص دادن که به طور مشخص 17 تا 15 هزار سال پیش اونجا سکونت داشتن ببینید جمعیت هایی که داشتن از آفریقا می آمدن از حدود هفتاد تا 70 هزار سال پیش پهنه رو طی میکنن از حدود 40 هزار سال پیش به طور مشخص میرسن پشت زاگروس نقاشی های بدنه قار و برخی آثار به دست آمده از اون قدیمی تر از حساب نئولیتیکه ای از تصاویر و شواهدش به همین خود دوره نیولیتیک برمیگرده قارهایی در خورم در آباد هست قار کنجیه خدمتتون بگم که این برمیگرده به دوره مسترین پناهگاه سنگی گرارجنه از اینجا در دو دوره متوالی مسترین و برادستین شواهدی پیدا شده حالا اینا تخصصیه اینا تو دوره های انسان شناسی زمانهاشو بعد حالا عرض عمریه. دوباره ب... مربوط به دوره مستریانه قار یافته است نامش یافته است متعلق به دوره برادوستینه حدود 38 هزار سال پیش اینجا آثار شواهد سکونت انسان در این قار پیدا شده یعنی وقتی ما میگیم 40 هزار سال پیش اینجا بودن بودن بعد خدمتون بگم که یک جایی به نام پاسنگر اونم همین شواهدو داره اه... یک دورهی داریم تو همین انسان شنسی به نام دوره زارزی اینا به مواد غذایی رو ذخیره میکردن تو همین زاروست دوباره این شواهد پیدا شده. در حالا شواهد 15 هزار ساله اینا که فراوانه. ما میخوایم قدیم میترین شواهد که ازود چهل هزار ساله رو بگیم. در اینکه نشانه های غارهای لورستان برمیگرده به چهل هزار سال پیش. یعنی نخستین سکونت و نشیمن مستند انسان در زاگروس بعدی که از آفریقا خارج شده رو از حدود چه هزار سال پیش ما داریم. حالا این چه ربطی پیدا میکنه به کیو مرس و اینا این دنباله بحثه که من فقط می‌خوام یعنی در این هیچ بحثی نیست که از 40 هزار سال پیش انسان در زاغروس سرکله پیدا میشه. بعد حالا ربطش به کیو مرس چی و چرا و به 35 هزار سال پیش اینا رو بنده ارث خواهم کرد خواهش می‌کنم تقریباً یه دقیقه کمتر صحبت فرمودید بعد از به حضورتون که ما من یه دقیقه حرف زدم یه دقیقه کمتر صحبت فرمودید ها از وقت خوده اشکال نداره آی فیروزی حالا بعد از به حضورتون که تقریبا مقدمه ماقبل کیومرس رو به عنوان شواهد حضور انسان اولیه انسان ها اولیه که در واقع نشت پیدارد اومد به سمت کوپایی های در فلات ایران رو به خوبی بیان فرمودید و در قسمت آیندم از شما خواهیم گفت ربطش رو به دوره کیومرس و اساسا به پدیده کیومرس در تاریخ ایران کوهن و تاریخ قلم روی میانی. خواهش ما این بحث خواستگاه جنوبی که بنده مطرح می‌کنم، نقطه آغازش همین جاست. جناب آقای فیروزی ما تا حدودی خب حالا شاید از شنوندگانم کتاب های شما رو خونده باشن آشنایی داریم میخوایم تبیین علمیتر و دقیق تر این مسئله رو بفرمایید با اینکه در قسمت های گذشته ایران ویجم یک با اینکه بحثام مقدماتی بود اشاراتی میکردید از شما میخواییم که در حدود همون ده دقیقه طرح بحثی که میفرمایید در مورد خاستگاه ایرانیان و اون افرادی که میان در فلات ایران ساکن میشن و به قول شما تحت پادشاهی کیومرس اولین پادشاهی و اولین حکومت رو در پهنی فلات ایران تأسیس میکنن حدود نزدیک 10000 سال بشه نه بر اساس فرضیه شما از خدمتون که این فرضیه من نیست بررسی های خانومه. تاتیانا کارافیت نشون میده که ایشون ژنتیکدانه نشون میده که نیاکان هندو های شرقی باید در حدود هزار سال پیش تا 35000 سال پیش در آسیا میانه باشن حدود مثلا در چه آرال و بالاتره شده این حدود که به اون حدود اون بازه زمانی و اون روزگار یه شاخص ژنتیکی خاص جمعیت خودشون دارا باشن بعد از اون تکلیف مشخص نیست یعنی هر کس یک نظری میده ولی این مشخص کرده که اینا به اون دوران در میانه بوده چیزی که ما میبینیم بعدش میبینیم که یه شاخص دیگه ای هست 18 19000 هزار 19 سال پیش جنوبی تر هست به اسم آروان یک اینا جنوبی تر اینا دارا شدن اینا 19000 هزار سال پیش ولی از اون برای من جذابتر اثرات فرهنگی سنن هندوروپایان هست و هندوروپایان روزش شرق شرقی و این سنن پیش از ارتوش در آسه کوچک برای من خیلی جالبه که چرا اون مدل تدفینی که شما در در کتاب سه هرودود روشه مادها میبینید مقان نوشته مقان مادی میبینید و اون چیزی که در وندیداد میبینید در چاتال هیوک نوسنگی آسیایی سری بود دیده میشه. حتی نقاشیش هم از یه از جسدی میخورن نقاشیشو کشیدن حتی... زمان میتونیم بگیم؟ چتالهاییک بین حدود نه هزار پیش از میلاد هست. تا مثلا هفتهزار. شش هزار رو مثلا پنج هزار رو عرض پنج هزار رو مثلاً نهصد، هیصده پیش از میلادم تمام میشه. این حدود اون تا پی اولش. و این خیلی به من جالبه. اینا این بازی در زمانی در آسیا میانه بودن بعد یک فرهنگی از اینها در آسیا کوچک مثلا در اوایل نوسنگی دیده میشه یعنیشون هیچون قشنگ اینا جا به جا باشند چون با این وسط هم ایران زد. وسط دریای خزر هم که نگذشته از بید. فلات ایران عبور کرده, آبور کرده. عبور کرده کی عبور کرده ما نمیدونیم من میدونم که هزار سال پیش از آسیا میانه جنوبتر اومده را میدونن 10000 سال پیش هزار سال پیش در آسیای کوچک اینا وجود دارن. واصم تعول خوبیه توی نظریات شما. داهم داین دا میان این سمت به سمت. اصلا عبور بیشتر به من شون میگه عبور کرده. این عبور ما نشون میده. حالا یه شاخه که این در ون... قبلا هم گفتم این در فرگده کم وندیداد، این وجود داره آقای نقطه‌ای که میرسین آبشاری است در نزدیکی تل حلف در سوریه. خیلی برام جذابه که این در وندیداد داد اومد آخ 16مین سرزمین هست. در تللف اینا به اون آبشار گسانا یا گوزه میرسن که بله. ما در متون عاشری میدونیم که این نزدیک تللف در کل اینا که عبور کردن برای من این سوال پیش میره که خب حالا عبور کردن بله این سکونتگاههای اولی این دهکده های اولیه به هر حال اینا توش نقش داشتن ما مطمئن مییم اینها باید توش نقش داشته باشه حالا دیگرانی هم ممکنه نقش داشته باشن ولی رد ما از اینو نداریم این دیگران از نژادی مشهول کی بودن چون واقعا شما مثلا میگی روی این میز قبلا پاکون بوده خب با ردی باشه دیگه وقتی نیست خب این پاکون نبوده ولی من اثرات جنتیکی نیاکان هندو و اروپایی شرقی میبینم در مقالات خودشون توصیفات خودشون در متون رو میبینم که به غرب فلاد رسیدن از نقطی در شمال شرق فلات و این عبور از فلات قطعاً رخ داده در عصر پیش از نوسنگی و قطعاً در نوسنگی در حضور داشت. حالا من وارد ای که میخوام بشم این هستش که ببینید اینجا بحث این شد که این اسامی از یک نقطی به انسان ربط داره از این نقطی به انسان رپ نه نماد. اصلاً خب این چه صحبتیه؟ ما حد هنوز در 400 500 سال پیش این این اسمای خاصی از اوستایی که میگن صفت این مثلا یک نامک یک شخص نیست و خنده داره و باید نماد بشه در سرخپوستان داشتی در بومیان قاره آمریکا. یعنی ببین حتی در یعنی مثلا میگن این یعنی لخت یا مثلا میگن جمشید یعنی مثلا نور خیلی زیبا یا یعنی صورت زیبا. نور زیبا مثلا همین چیزایی درخشنده زیبا خب اینا صفت هستن اون انسان اون زمانی که ما روانشناسی شون نمیدونیم که اینا هر نم مذهری ممکن اس کنن بله انسانای خیلی ساده تری بودن از انسان عصر آهن که بخوان اسامی خیلی پیچیده بذارن اسامی مصری هم اینجوری تر میشه چرا آقای فیروزی خب حدود 3 دقیقه فرصت داری. من حالا تجربه دیدم مقدمه شما در مورد پیشا کیومرث رو بشنوم ببینیم ما ده. پیشا کیومرث چیزی نمیدونیم بلد. ما فقط یه سری تپه های نوسنگی داریم سکونتگاه نوسنگی داریم قصری قار داریم ما نمی‌دونیم این همه جای دنیا هست یعنی اینه که چ... مقدمه اون چیزی ت... که برای من به داستان کیومرث جالب هست ماجرا که از کیومرث اساتد متاخر میگن اینه که ما دو جور ماجرا از این آقا داریم در یک که خود اوستام هست این نخسین انسانه در یک ماجرایی که سنده متأخرتر اسلامی به ویژه گفتن این نخسین پادشاه و خیلی جالبه در این نسخه نخسین پادشاه از میان تمام نخسین پادشاهان در تمام عالم این زمینین تا این داستان رو داره یعنی همه جا از آسمون بهش پادشاهیو میدن به اون فرد اول یا میره جنگ میکنه و فلان میکنه پادشاهی میگیره از آدمای ناشناخته این همراه یک دسته مردمه جا, جا میشن اون مردم خسته میشن یک رهبر میخوان و این رو انتخاب میکنه. خیلی خیلی خوب پس شما معتقدید یک اد افراد میان این کیومرس انتخاب کن زمان و مکان رو هم بفرمه ما زمان رو باید بهش برسیم از الان امتونم زمان باسه کیومرس بگم زمان در روز از, از... اق... از دوران نوینتر اومدن باقیم این به نو میخوره این فرد و چیز عجیبه اسمش اسمش اشارات باشه. عرض کردم ما در باستان شناسی نونگی هایی داریم در حد معماری تخشمشید. از اسم و زمانش نباید بترسی خیلی از بناهای همین مصر هزار ساله که به نظر من الگوس نه اینکه ما بخوایم بخندیم که با ایران قیاسش میکنین مثلا الگوی ایران بود باشه باستان شناسی. خیلی از بناهای کوهنتر مصری نسبت به بناهای متأخر مصری خیلی پیشرفته تر هستن، پیش بله خب تو کتاب خودتون شما زمان مشخص کردید برای بله, بله هزاره هفتون هست هزاره پیش هست خیلی متشکر حدود یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نموده تا آخر برنامه نمیتونیم بحث جدید رو هم مطرح کنیم پس مشخصا جناب آقای فیروزی گرامی هزاری و پیش از میلاد رو مقدمه تشکیل حکومت شخصی مشخصن اصلا به نام کیومرس که یک انسان ها خب اون موقع هم شهر های خیلی بزرگ هم داستان دیاکو بله, بله. به وجود می و میان حکومتی رو من تشکیل میدن سکونتگاه هستن سکونتگاه ایو این اصطلاح تو اشتغال به کار میبریم مورد تَمَسُّق قرار می گیرین دقیقاً در حد دهکده خیلی کم بود من از خیلی از دوستان که این نظریه رو شبیه این نظریه دارم یه چیز رو همیشه می‌پرسم میگم انسان ها زمانی که از شرق آفریقا اومدن بیرون و اومدن پشت زاگرس تا زمانی که شما که اکثریت غالب هستن دوستان خواستگاه نقطه‌ای و حالت کوپه‌ای که جا جم شدن در آسیای میانه رو تو توضیح بدین چجوری اینا اومدن رسیدن پشت زاگروس هواپیماکی نداشتن که بعد چی شد که از زاگروس رفتن به آسیای میانه و بعد از آسیای میانه پخش شدن رو تا امروز هیچ کس نتونسته بله توضیح بده بله بله حالا در همه میگن می نامشخصه بله در بنام های اومدن در این مود بس که ولی خب دیگه میخوایم وارد ورده چیز مشخص تاریخی بشیم پس اینا با آقای فیروزی 1000 پیش از میلاد معتقدن که یک افرادی میان توی یک سکونتگاه های اولیه که اصلا نشه حتی روستا هم در واقع نمیشه گفت خیلی تو سکونتگاه های اولیه یک شخص به نام کیومرس رو خیلی زمینی و خیلی ملموس به عنوان پادشاه خودشون انتخاب میکنن و خیلی دموکراتیک و واقعا برای اون دوره میشه گفت اصلا یکی عبیج... استردن بهش میکن روستاهای آغازین یکی عبیجگی هایی این دوران نوسنگی همین در واقع جماعت هایی خیلی چیز سالر... در واقع تاموسان دموکراتیک بود در حقیقت مردم سالارانه بود و این یک شاخص نوسنگیه بله این مکان حدودیشو برای این نشاست میتونن بگن حالا تا بعد دنبال بار مکان بود میگن یک اطراف برق و دماوند بله. بله. بله ما نمیدونی ولی بله. بله. یعنی مثلا شمال افغانستان رو حساب کنید به اضافه‌ی شمال یعنی تا دماغن. بعد از رفتن به چاتال هوک یا بعدش بله. قبلش بعدش ولی اون هایی که رسیدن به آسیای کوچک این آدمو نیستن. بله. خیلی متشکریم جناب آقای فیلدوزی عزیز و جناب آقای ایران مهرم در ادامه مباحث خودم مباحث که با بنده داشتن در برنامه‌ی برابری رسیدن به حدود 40 هزار سال پیش و سکونتگاه های اولیه و هایی که در لرستان بودن اونجا ساکن شدن و در قسمت آینده قول دادن که بفرمایید اصلا ربط این مسئله به دونیکی و مرس چی هستش که طبق پژوهش‌های متعلق به 35 سال پیشه.